یا رحمه رحمه رحمه حکم الله بعد مرحله الشرط عبره للمسئله نهیه في و وطابعا نحن امتعردنا به سلمات السنة نظرنا به عمل حبارات عنه مفتی ها و حتا به منتعج به دوان ابتداعاً نفت و کلام الاسطاد و تقریب الاسطاد خب نمبر اداداییت تقریبات و ققیقت الاحوال که و قبل النهی على تساط معاملات و عدم دلالت نبکر بعض الامور قبل الورود في البحث الامور الامور هذه به یه مکاله، یعنی ایندلاعه به نحی فی المعاملات علی التساز و علی ایندلاع دار و ملازمت و شرحنا زبتی که اتداران که المساعد الفقیه همه ما تقدم ان نقول شيء لیکن هنه نسکره بود رحبه آوه به دسته که ایل مسئله ویلو خرح از بها دیستیده هم نحیف المحاملات یه دلو این فساد ویلو فرم فرم فرم محاملات فراز من فساد قبل درود و نحن الظاهر الان محل الكلام وجود و لیکن از راقر و خارجی که ربایان فی مثلا وواهدالهایان و سفر ربایان تی مخاضر تشریف مبارفن الى کلمات لعنی و کلمات فقاهای و غیرها نهیو فی الاباده دائما به شکل و لذا کانه ها در احد تفسیر یعنی نیسته دینا الامر و انهو دایما صدقه العربیه مدلا او في نصوص شرعیه که کتاب سنه مثل دایما لا مثلاً او علیکه هم خب مهم می کنیده الان اذا یا انده یکتر کتاب لیکن الان که شریعت مقدسه از مایلی ترسیل واحده ولیلا سوال سبب اولا مجال فی غیبی لایق در بعد هم یعنون مجال فساد فی غیری یا ضلع علی و اصولت احمد ان ننفی جمیع اصواری یا ضلع علی فساد اللہ غالبا در اطلاق لایق طبعاً اکسوان مدرد دائماً داری زلالی فسان بل هنات نقدر و همهو یه دلده علم سرکه مونو قدر به زلالی فسان عمل المعامل صحیح هستم فها دیگه تو یعنی به عبارت اخرام نیست مسئله دائماً این با خصوصی ذکرنا استادم و لم یست غيره ایوان غیره ان المسئله تلاحظ من جاریتین فقیدیه و سوریه في الفرق دیناهما اذا موردیه فقید اذا لوحبا عامتا یعنی الان المشور یا تعلمه الانسان یا تمکنون محروف من, من الاسطنبال به مجرد ان تختار مثلا دیهاد این مسئله این نه یدل عربتساد و این نه لا یدل عربتساد لا تسقلون فقل تقریر الاسطنبال لا. هنات لابده من ملاحظات موارد خصوص خود یعنی خصوص الموارد. مثلا الان که قرآن کریم نکن که اثارت رشتری عند النظر بين ظاهر الحكم لعلم عالم عندنا حرم على الناس حق انما حرم الله هذا باب حلت وهو اللي حرم الربا حرم الربا هنا الغريب قرآن کریم موجود موارد با باب المعاملان حتی نه تعدل به نیه مذن فی باب زواج که از العده ولا تعظم ولا و اغلطن نکاح حتی یبلغ کتاب و عجله لیسه بی ن نه نه می ولا به نکاح، و نه تعظیم خب، الان فلوسون، نه تجولون نهی تعلق و نه يمكن ان امیوگان این نفی مثل آده نه و اینما تعلق بالعظیمه للمبارده هم یکن انیغار ان نه ادار تعلق بالعظیمه ایسه للمبارده مبارده از هون لحظیم اینما تعلق النهی بالعظیمه لنقطت قانونیه مون و لعله ها ده که لعل ظهر السيد في ان قد ولا احكام على المراه في ايام العده فما عليه معقدهن لاحظوا ان فسخ شيء يقول والها على ادبي از مو فقط اذا على اقراطه في فقط العقد فاسدوا و فقط بل تحرامو علیه معذده لعله غذا، نما قول لعل؟ لعله من افکار یعنی همه هم من نکات تعلق الناش بلعظیمه یعنی لیسه لکن حتی العزم بحیث لو که خلف الشخص بعد لیسه لکن العزم، اینجا هم معاریه نه <متحدث> هذا استنباطي من عندي كان ولذلك جمعي من فغالسون حتى من الصحاططان وإذا عقد المرأة في أيها ما عليها فلاحظوا هنا مضافا إلى حساب النكاح يستطاد حرمة المرأة عليه أبدا لكن هذا ما موجود في ألسة أخرى الموجود, الموجود مثلا حرم ريضا الموجود مثلا ورن بیر فمثالت نمیر في المعاملات الان ذکرم بکنم جمعین العیات فی الکتاب فی الگروایات نه نبی و نه نبی الگرم لا مالی که اندر لا فی ولی عجیب ان الاسطاد و غیره او لم یاد اعراض داره این نقطه تلیلا نخنا خلاص و تحاله الامرالعظم انمون انتون ما من نعیفه لیم و کلا بکسی عبادت شرحته ها در الان شرحته اکثر علیکم و اولا فقهیت ثانیا اصولیه المراد من البحث یعنی الوقت عن خصوصیت مورد یعنی یوم که به انسان هلیابول فرق بین هلیابولا سبحانه وتعالی بی و بین هلیابول حرم الروا حرم الروا بود فساد الروا اما ذرون لیتون مفاده بود فساده بود فساد من جهت تفصیف اصول هل اجتبار در یه حسن به آلو ادافان ها کدار ادافان ها کدار لا از صحیح انگلات منعجل علمی سال از نفت واقع ابتداعاً اینطور فی جميع موارد النهلی فی المعاملات سواء مکانت دلیل من القرآن و من السنة من روایات همیل بیض ام رسول الله اهم شیء قبل داده یعنی اهم و نفتت انتظر ان, البحث لابد ان من بحث لاغوز من زاویت من زاویت این من زاویت اما من از زاویت فقیه یو لاحق تعبیر الواره ورده نهن به اوحرم لا تبع لا حروق اصیل مختلفه مختلفه این دار اول میکنم از این نه، اول چون اگر معلوم که این مثلا خرورمه اصلا بودش محرومیه به این معروفیه مثلا ممکن نیست یا لا تعرضه بیش از فساد این مورد فلسفیی که رابطه نهی از نداره از خصوصیت میشه یعنی این ببینید طبیعتا همینطوره پس یک نقطه باید باشه که لا تعرضه اول خطرناک یا نه این او چه اذبیه لا مثلا خلاف ظاهره قانونی خلاف اصل اولید که لحظ نکات زاری داشته باشه، عدبید شما باید قانونی چرا آمد الله تعظیم و اوخوزن چرا آمده بوده به؟ اینجا بوده هرمان رضا؟ اول بران این نقاط لحظی و نکات قانونی آیا این مجرد تحبیر و در تحبیر در <حساس> در لحظت الا على نقطه برداشت خدا خیر این دو بحث یکی اینکه میگه ما این مطلبی که گفتین از این آیه نمی خیلی خوب من می‌خوام بگم اول این باید بررسی بشه بعد بیا به در, در, در یعنی بحث ما یک جا تعبیر ضرر لایه یک جا تعبیر اهل الله حال و هر یک تعبیر لا یک جا تحبیل دارتر یه ای زنگی شما خیلی تحبیلات رو مقدره که تو در حال از دارت که قانون مادره، درست قانون مادره شکل فهمیده؟ نه جزئین اینی این که میاد در ضرور به نظرش میاد که این به درست اما شما انجامش که ما همین بدیگه نه هم حد میکنه اصلا و نظام از کردیم کم تو اهل سنت بارن که این بیگ باطله در روش ندار برسی از آنون جونه مثل احمل مهمبر بارن ادهیشون هم گفتن که مثال نه از رسال فساد این تأمیر ما این مطلب رو که اهل سنت ادهی تفاصیل دادن معتقلی دروسته اما نکته به نظر ما اینه که البخت و فیاره مثاله تارتن به نکته فقریه هست اخراب به نکته فقریه هم نکته فلیه مرادنا ها ملاحظت مورد و تعبیر الوارده که فرقون بین انیهول نه نبی و, عن و ان بیئر غرم لاحظه هلغا داری استفاد من الفساد و بین انیهول لا تدعماله ایسه انده و بین انیهول مثلا نه نبی و نه ان نکاح شغار مثلا فتا تعابیر موجوده فی ها در مجال مختلفتا فلیده ایلا لاحبنا خصوصیت تعمیر البحث و فقهیان و ایلا لاحبنا که آم البحث و الان نکته ها دهی نکته نکته اگه من انه به نه فی فیزه نکنه شریفی بعد مخاطر تعرضه المؤمنون اند شروع بگه الاندیه یعنی الانسان لا یفاره بگون المؤمنون یعنی اذا شربت امرن شیئن فعلی که انتم غا معروض لا تقاره بگون خب ها در معنیه لای حتی در معنیه قانونی اختلف بودی داره کنایتون هم المولدیه، یعنی یجب با دفاع روشن علیکه انلا تو فارغشن یعنی یجب با دفاع رو، فقط حکم تکلیفی یونسه من هم من قای حکم ورعی یونسه که ما دالت بید معنه داره، انت انت انت الاتذام الاتذام. الاتذام. یعنی انتلا بود دن تقام اش شر فه انت شرطه تخلف تخلیفت شرطه ذا تخلف تخلیف عن المعامل لمن اش شر هو التزام اونی، ارتضام، یعنی اش شر عبارتون یعنی اعتبار شخصی التزام شخصی یود کردی ضمن التزام آخر آل عبیعو که کتاب ها در التزام به شرط انتک تو بیرساله ها در التزام آخر التزام فی التزام فاذا اضاقار المؤمنون شروطه، يعني يجب عليك ان عند شروطه یعنی یجبا علیک انتبا عنده التزام کلده که فی التزام آخره فی اضاق فارق تبو و لن تکن عنده فذاکن به امکانی هم یفارقه فلضای استفاد من منحل خیار انده تخلیت شهر الحدیث المبارک ناظرین فقط ليس و رعی نتاله دون به در حدیث ناظرین لکه در حکم در حکم ناظرین فاهم در مطلب اللی دو که رفیده لحدیث شهر ایغن یک ریفی یعنی من جمله التي نحن به سفر کدیه، نواجه ها و اسلامی، سواغ اصول سو مثلا روشیعتا، لهم نه، یو غال غال جدا، ان لغ العربیه، الّتی نظر به هر لغه مثلاً اقتل توفه که من بوله مالایوتاً لحمه، اشارتون، کنایتون، ارشادون به تعبیر بعدن، الان نجاست البولیت نفس انهو غاله ایخ فیلی نسی دارم قالو در یکن هنها قانونی مدرن، به این نما و المؤمنون اند استخدمو که عربی کلمت علم و الوجود الحکم موردی استخدمو کلمت اند و عراضو الحکم مزا وقری یعنی تخیار تخلو و و ادرا حضا سنانی لازالک انه سوا اونسو القرآن اوف السنه توجه الانعوین به صفات و اناوین مختلفه مون کدون في فلعباده اول ما آمده واحده تعبیر واحد مثلا الان سو قوانین قالبا لا تقرد. لا رهیوزه با یعنی از صیغ واحد از اون حلی تحریم واحد فشه یه لقیه الان موجود به نسبه قرآن کریم لیسه بحثاً اصولیه ای قانونیه مدر فاسم این بحث حقوقی لیسه کلهو بحثاً اصولیه قانونیه مقدارونه وقتون لغوییون خلحیون اون لغوییون یعنی لاغود دهن نلاحب الموارد المعینه و حسب الموارد المعینه قد نستفید و الفساد اولا نستفید آزهی النکتر بود النکتر ثانیه في المسئله تن وطبعا رفعنا و شرعنا في باب النهر في المعام في الاباده شبیه دا تلاختنا تن دخت وصولا في حال المسئله من جهتين مو من جهت واحده ولو يستفاد من بعض العبارات من جهت واحده لكن في لو و في الواقع من جهتين امجهتی بودا بحث قانونی بحث حقوقی لا یلاحظ زیار از بحث القانونی الالفاظ والمواد والتعابیر بلی نبر الى المعنى بلی نبر الى القانون مثلا اصولا في ای قانون الخرمه خرمت المعامله لا تلازم مهت فساده یکیل انتکون المعامله یعنی آل قوامت به طبیعت حال آن تخته فصل. شوام که تعبیر سیلی اف عذر ون دی تعییس سیلی. نیست نقطه سیلی. عن نقطه اعتبارات عن ال اعتبارات قانونیه. نعم نه چریک اعتبارات قانونیه. من جمله ال ابحاف اعتبارات قانونیه. احلازه دیل از تصانح به نمی اعتباره و اشیا اخر از ترابطه به آن بین اعتباره فا که بختون حصولا که قانون این بابر بدا درکن معاملت و محرمتن ای مغروبتن مغروبیت المعامله لا تلازم لا تصالب معن به استضاف حسانه لیست ملازمه فساده. فرض مثلاً سعد اینجا الله تعالا شبیه، مو شبیه کل کثیف الامام مثلاً خناخت بحثم، آن اخذ الأجر تعلوواجبات جانزه عباد. طرح جمله از معادم نمرخش اصفهانی علماش از بهادی استوده. هل الواجب یوناقی ما اخذ الأجر عباد. اگر خراب نه عمل من الاعمال صار واجب. لا راصل به ايت صيغه اصولن وجود و شيرم انسان خلقار هم هر واقع وجود معنا اختيار و مجانن هميون چي گشتونه اختيار و هم ما به ازايمان كن فاضا بحثه قولی در اصل از وجود معنا اختيار و مجانن یعنی از وجود محنا از محوش داری رو می کنید بعد به هزاری آزا حالا وجوب از وجود یک آسان به و اجید شیخ هم بگوشوند اصلا فلیه قانونی فلیه آره قانونی از ما ممکنه است رو اجرتین مثلا اول از شخص خود شخص انا اصطاقی ساعت زهر نفسی آخو من کما اون مثال بارد در متعارد از قبار واجبان المشهر المشهر در سارتین آخو من کما مالند و عقضی بیزند کن وجود قبار از اشار ازا جعلش و ها در وقت وقتون قابلی، اصولی فر وقت اصولی تصاد و تلازم از تصاد طبعا تعلمون از هذا یعنی فی محامل اعتبار قانونی یمکن ترده ها یعنی يمكن تصویر ها درگاه بزنن به صورت این. از صورت اولا انه اوله الوجو خرمت المعامل شیعون و خسادها شیعون آخر بینه همه ملازمتون یعنی من خرمت المعامله نفهم به ملازمه خسادها ها دا مزید علاها در تصور انه خرمت المعامل شیعون و خساد شیعون آخر فرض الاخر، حالا فرض الهرم فرض لا الاف فرمتو فالمعامله اینمی هی هی هم کسانست موند معامله، معامله، المعامله، المعامله به عبارت مقرار عبارت من الفساد. لا فراجیست قولنا تلیمتو سبع اصولی شیعه متاخره و ملازمه یعنی حالا مبدیل علاها در تصور انه خرمت المعامل شیعون و حسادها شیون آهد لکن هر بین هما حلازون عمله ها بین هما حرابوسون ها من و من هم من لایر حلازون کل لكن مجموعه لکن المسأله لایر و فرحوها و فردها زهاب تو صبح زهاب اصلا حل خرمتون خربتون معامله ولی تصابه از داده ها اما ما شیعان واقعه هست مون شیعان ازا ما نا انه معاملتا معینه پاسد حرامون اینی پاسده لا نفتحن تلازم بینه ما اصلا خورمتون معامله ها لأن ننه خرم اقعه و المعاملون خواهیت مغوضیم نوست القیام و القبود لا بین اخترافی اعتبار اقعه از اگه از مغوضاً بفاسه فاسته نوسته لا يمضل فيها به تارخ الى و در حرمه لا تعدمون اصلاً داریم داخل خصوصیات به تحبیر و دوها که برد خرمت المحامل تصادم و تلازم و تصادم و تصادم و تصادم اما خرمت المحامل لیه اینم تصادم ها همین اونا رو از ما رو یعنی نه ملازم. ها دا ال... با... طرح الاسم اطفاق هستانی همون مسئله که من زابیت غورات لخریه من اتفاق این و ها دا فی عمليون من و علمائی و اصولین بین انه یکول حرمه و بین انه و طبعا آدام بردم یعنی نادرون الالجهات لحقیه و الالظهورات لحقیه و الانصاف انها و البحث خیلی بخت و الان هم انصافا جما انده و فیلستان من الکتاب و سنه الالفاظ و سید الواردس مختلف و به ما عمل الفاظ مختلفتون لابد در صلاحه ایغنقی غلن بحث ها در نه لا, لأ, لا مالی سن ذرخ تعابیر مختلفتون فکر طبعا از المراد به از تعبیر لقضی الخاص به حضر قانون يمكن أن نفرق ما بين مقام التعبير وأن هذا التعبير يدل على الفسار هذا التعبير لا يدل على الفسار ولذا فرق في مقام التعبير ما بين الألفاظ الواردين وهذا من خلاف البحث الأولى البحث الأولى بحث قانوني ولذا من طرح المثال من هذه الزايد مثلا قال إذا كان الحرمة متعلق بالسبب لهو حکمان متعلق بالمثبت لهو حکمان متعلق هم بالتزوید ها به معناه نظر لجانب المعلمی و اخانا هو هوا وجهت النظر الان ها شرح لكم فهم كلام رحمه الله قال رحمه الله في باب من اول این سبخ واحد و تراسیم قار ولی بشتحیه او فی المغام لا یدرد علا ها دست هاته با عن المعامله یدرد سنه قال, قال لا یدرد سنه قار و انهو لا ملادنه که بین خرمت و مظلانه ها اصلا تبین ان فرحه بود لیس دقیقا همان برنامه‌ای ما مرتبه قال, قال لا لانه ما قلت يعني يدل على, على فساد <تصفيق> لا يدل على فساد لا يدل على فساد في غير الاغراض النهي عن المراءه لا يدل على فساد إن النهي لا يدل ادلاله الناجرات في البحث الذي ضمن صراعا في جانب المعنى يعني جانب البحث أو باللغوي هذا لا يدل معنا بأن دلالته في في احد في كما نقول نمی‌بینیم که آیا این می‌تواند از مثلا استفاده کند. اما اگر این می‌تواند از آن‌ها استفاده کند، آیا این می‌تواند از ده ده یعنی اینکه دلالت محکم معاملات اما درورت بزرخواست دیگه هم نه اون نیست یعنی این جهیت رو در دهده؟ در طبعه بیست و شیش لا اثرت المشارات الاسوریه لا اصلت مسئله اصولی ریعا اول علیه اندشت و صد همون من سیزارک ماده کنها غیر مدرسه اندال ملازمت مجبوره و این لحظه کن تحت احضر مقولا الا اصلا همه ها ماداره که واقعی و ازلی های صابت تفن ولی صد ده ها از من الازم موجودی و کار دیگر حالا قال الملازم سفلی بعضه، من اونها آتده آنگی، یعنو اروس ها <تصفيق> فیما لوکان المفخوص و انتهاد المشأله دلالت النحی عن الفساد فرقه بینت دلاله و بینت ملازمه را صحیحون، ها برکنان سکت حرسالله که؟ فی آه. آه. آه. آه. <تصفيق> يعني یعنی به اگاه و یعنی کما یا دول علم خرم یا بین فرم و و لذا آدم کلامی به جمعه الانای شرح این بین آما اضافه اون نازد دلال ملازمه یعنی معامله و فساده ها بین همه تلاغ دوم هم اما بعد تلوان اما راقون را به راه دلاله کنه کما یا دلال الالفاق بیر دلال الالفاق مو مون هم بین و ولی زا قاله اونه فی مالوکان المبور فی چیه ها ده که علی و عدم الدلاله. حيث انهو لا اصل علاها در سر و ایوان لیو عبدالعلی صحور جعل دلالت شیف و الملازمه شنا صحیح لکن ها قال في واحد و و صحیح بالمراه انیو قال انا النهیه عن ان المعامله لا يدل لا فسادها و انهو لا ملازمت بين حرمت معامله نبخنانا او لعنه مراده بود و کما آمدن هست. یعنی به عبارت مقرد. لا یدول شیعون لا مدازمه یعنی هزه اون سموت الاسبار نا لیفت این نقطه های کذا این نقطه نقطه قانونیه قلت بود اصولا ها از تفسیر قانونی اون معامله و فساده ها واحد این شیعون واحد فتما علا انه یدوله علا قرمه یدوله علا فساد نمشه شیعا و هو انه قرمت ول آخر خیلی نرز نبخم باید همار اون دون نحن الان شرحنا لکن ان البحث القانونی هم فی نقطه هم ان نقطه او دار قسونن که به قانونی هم به قانونیه و الفساد تعبیران ما علم تصورده خرم غیر الفساد و الفساد شیر الواحد از آن خرمت المعامل واقع قانونی إذا قال يحرم عليك المعاملة مثل مع الشبكات الأمريكية سموا يذل عن الفساد الخرم الفساد في المعاملات موانا واحد فهي مره المناسب ها كده يقول هل النهيو كما يذل عن الفساد يذل عن الخرم الخرم يعني الفساد والخرم النسبت هما إلى دلالة النهي نسبة واحدة أم لا الفساد شيئا و خرمتو شیعون آخر اصول از الامران مثل ادن خرمت لبس شیعون و اصول صدر بلحریف صلاح شیعون آخر هست فیلتزم به ام نمونات شیعین مراد به شیعین ای اعتبار پارونی تی فی واقع اعتبار قانونی یوم که بیست سالور علم آمده وله عرض حرامون لیکن بیست فاسدن فاکدون لیکن بیست حرامن ما بینه کن یعنی تفکی کن که اعتبارات قانونی فا ده اعتبارات قانونی و بینه هم فا این ارده ادار کن ادنا انما شیعان فا حل بینه هما ملازمتون به حیث و فیل مقامل اثبار. خدا تعلق الخرمت و معامله نفتک شف و فسادها املاق لازمت بین همان یکونو حراما ولا يكون فاسده لله سبحانه و اتحامه و الله اللہ و علیه و آله فاسده در که معامله حرام نفتیه aleyküm selam <laughs> <laughs>